گاهی سعی می کردم چشمایم را باز کنم ولی دوباره می رفتم توی چرتی نصفه و نیمه. بعد تصادف به شکل مبهمی یادم آمد. خواستم به تا ببینم او هنوز روی تخت بغلیست یا نه. ولی قدرت نداشتم کوچکترین حرکتی بکنم. این رخوت حس خوبی به من میداد داد. یاد پوزه بند بزرگ و سیاه افتادم. بدون شک اتر مرا به این حال و روز درآورده بود. تاقباز افتاده بودم و با موجهای یک رودخانه این طرف آن طرف می رفتم. قیافه زن خیلی دقیق جلم ظاهر می شد. درست مثل یک عکس بزرگ تمام قد. کمان موزون ابروها، چشمهای روشن، موهای بور، زخمهای روی پیشانی و فک و گونه. در این خواب سبک، مخرمایه چهارشانه عکس را گرفته بود طرفم و می‌پرسید این آدم رو می‌شناسین از اینکه می‌دیدم حرف میزند تعجب کرده بودم با صدای ماشینی ساعتهای دیواری گویا مدام سالش را تکرار می‌کرد به قدری توی آن چهره دقیق شده بودم که به خودم می‌گفتم بله این آدم را می‌شناسم شاید هم قبلا به کسی شبیه او برخورده بودم دیگر پای چپم درد نمی کرد آن شب کفش های کوهنم را پوشیده بودم که کفی نرم و چرم سفتی داشتند با قیچی بالایشان را بریده بودم چون خیلی تنگ بودند و پنجم را فشار می دادند به کفش گم شدم فکر می کردم لنگ کفش فراموش شده وسط پیاده رو تصادف طوری شکم کرد که دوباره خاطره سگی که مدتها پیش زیر ماشین له شده بود یادم آمد حالا خیابان شیبدار مقابل خانه را می سگ فرار کرده بود تا به خرابه پایین خیابان برود می ترسیدم گم شود برای همین از پنجره اتاق زیر نظر داشتمش معمولا شبها میرفت آنجا و هر بار سلانه سلانه از خیابان بالا می آمد. حالا چرا این زن پیوند خورده بود به خانهی که مدتی از دوران کودکیم را آنجا گذرانده بودم؟ دوباره صدای مرد را می که می این آدم رو می شناسی؟ صدا آرام و آرام تر و به شکل زمزمه در میآمد. آمد انگار توی گوشم پچ پچ می کرد. همچنان خودم را به جریان رودخانه سپرده بودم و روی پشتم موج میخوردم. شاید همون رودی که با سگ کنارش قدم می زدم. رفته رفته غیافه جلوی چشمم ظاهر می شدند و آنها را با عکس تمام قد مقایسه میکردم. بله او اتاقی داشت در طبقه اول خانه آخرین اتاق ته راه رو با همان لبخند و همان موهای بور که البته کمی بلندتر شده بودند اثر زخم روی گونه چپش مانده بود. ناگهان فهمیدم چرا تو ماشین پلیس امداد فکر کرده بودم می شناسمش. مطمئنن جراحت های صورتش آن اثر زخم را یادم آورده بودند و آن موقع متوجه این موضوع نشده بودم. اگر قدرت داشتم سمت تختی که رویش دراز کشیده بود به چرخم دستم را دراز می و روی شانهش می گذاشتم تا بیدار شود. حتما خودش را همانطور توی مانتو پوستش پیچنده بود همه ی اینها را میپرسیدم بالاخره میفهمیدم او دقیقا کیست همه جای اتاق را نمیدیدم سقف سفید را میدیدم و پنجره ی روبرویم را پنجره نه یک دریچه ی شیشهی که سمت راستش شاخه درختی دکان میخورد آسمان پشت شیشه آبی بود آبی زلالی که از یک روز زیبای زمستانی خبر می‌داد احساس می‌کردم توی هتلی کوهستانی هستم اگر می‌توانستم بلند شوم و لب پنجره بروم می‌دیدم آنجا مشرف است بر پهنه برف‌ها و شاید نقطه شروع پیست‌های اسکی دیگر به جریان رودخانه اجازه نمی‌دادم مرا با خودش ببرد بلکه روی برف‌ها سر میخوردم. شیب ملایمش تمامی نداشت و هوایی که بالا میکشیدم به خونکی اتر بود این اتاق نسبت به اتاق دیشب در بیمارستان مرکزی بزرگتر به نظر می آمد. در سوراخ موشی که ما را بعد از سالن انتظار تویش چپانده بودند نه دریچه شیشهی به چشمم خورده بود و نه حتی یک پنجره کوچک سرم را برگرداندم تختی وجود نداشت کسی جزمن من آنجا نبود حتما اتاق بغلی را به زن داده بودند و به زودی از او با خبر می شدم حدسم درست نبود مخورمایی چهارشانی یعنی همان کسی که می ما را با دست بند به هم ببندد معمور پلیس نبود و ما هیچ حسابی با او نداشتیم می توانه سرسالی درش می خواهد بکند و بازجویی ساعتها و ساعتها طول بکشد دیگر خودم را متهم نمی دیدم. روی برف ح میخوردم و هوای سرد کمی سر حالم میآورد. تصادف دیشب اتفاقی نبود. نشانی داشت از یک قطعه رابطه. این شک مفید به موقع رخ داده بود تا بتوانم نقطه شروع تازه توی زندگیم داشته باشم. سمت چپم در بود. درست بعد از پاتختی تختی کوچک و سفیدی که کیف و گذرنامه ام را رویش گذاشته بودند. نباسهای را کنار دیوار روی صندلی فلزی دیدم. لنگه کفشم زیر صندلی بود. صداهایی پشت در میشنیدم. صدای گفتگوی زن و مردی که دوستانه با هم حرف میزدند. زدند. واقعا میل نداشتم بلند شوم. دوست داشتم این استراحت تا جایی که ممکن است طول بکشد. از خودم پرسیدم، توی بیمارستانم یا نه احساس کردم نه چون دوروبرم پر بود از سکوودی که با صداهای اطمینان بخش پشت در بفهمی نفهمی شکسته میشد. شاخه درخت در چارچوب پنجره تکان میخورد. دیر یا زود کسی به ملاقاتم می‌آمد و توضیحاتی میداد. من که در زندگیم هم همیشه مراقب و گوش به زنگ بودم حالا اصلا دلم شور نمیزد. شاید این آرامش ناگهانی را مدیون اتری بودم که دیشب به ریاه بودند. شاید هم یک داروی آرامبخش دیگر. به هر حال وزنی که همیشه احساس می کردم رویم سنگینی می کند دیگر وجود نداشت. برای اولین بار در زندگیم سبک بودم و بیخیال. طبیعت واقعیم هم همین بود. آسمان آبی پشت پنجره کلمه ای را یادم می آورد. آنگادین من همیشه مشکل کم بوده اکسیژن داشتم و حتما دیشب دکتری مرموز بعد از معاینه هم فهمیده بود باید فورا بروم آنگادین گفته گوشان را پشت در میشنیدم. حضور این دو شخص نامرعی و ناشناس می میکرد. شاید آنجا ایستاده بودند که مراقبم باشد. دوباره اتومبیل از دل سیاهی میآد بیرون میزد به من. و میخورد به تاخهای هلالی درباز میشد و زن تلو تلو خوران بیرون میامد چه موقعی که روی کاناپه سالن هتل بودیم و چه وقتی توی ماشین پلیس مچم را فشار داده بود خیال میکردم مست بوده و تصادفی عادی اتفاق افتاده از همان تصادفهایی که توی کرانتری معروف است به رانندگی در حالت غیر طبیعی ولی حالا مطمئن بودم قضیه طور دیگری است مثل این بود که کسی دزدکی زیر نظرم بگیرد یا دست سرنوشت او را سر راهم بگذارد تا مراقبم باشد آن شب زمان هم عجله داشت باید از خطری نجاتم میداد یا هشدار میداد بی به خاطر همین کلمه آنگادین بود که صحنه ای دوباره توی ذهنم زنده شد چند سال پیش کسی را دیدم که روی شیبه بسیار تندی اسکی میکرد خودش را عمدن به دیوار کلبهی چوبی زد، تا بایش بشکند و به جنگی که به جنگل الجزایر معروف بود نرود. او آن روز میخواست زندگیش را نجات دهد. من که از قرار معلوم پایم هم نشکسته بود، به لطف زن تصادف به قیمت ناچیزی برایم تمام شده بود. این شک لازم بود. به من اجازه میداد به زندگی گذشتم فکر کنم. باید قبول می کردم که دارم دنبال درد سر می کردم این اصطلاح را قبلا شنیده بودم و گویا در مورد من هم صدق می کرد. زیر صندلی دوباره من به کفش گنده ای افتاد که از وسط پاره کرده بودمش حتما وقتی می لنگ کفش را از پایم در بیاورند و روی تخت درازم کنند غافلگیر شده بودند کلی محبت و خرج داده بودند و گذاشته بودندش کنار لباسهای مرتب شدم و یک پیجامه آبی با خطهای سفید کرده بودند تنم. دلیل این همه مهربانی چه بود؟ رابط زن دستورهای لازم را بهشان میداد. نمی توانستم چشم از آن کفش بردارم. با خودم می گفتم در آینده وقتی زندگیم جریان تازهی پیدا کند، باید به یاد گذشته ها همیشه جلوی چشمم باشد جایی که خوب دیده شود مثلا روی بخاری دیواری یا توی جعبه‌ای شیشه‌ای به آنهایی که دوست داشته باشند در مورد این شی بیشتر بدانند جواب خواهم داد این لنگ کفش تنها چیزی است که پدر و مادرم برایم ارث گذاشتند بله هرچه در خاطراتم عقب میرفتم، میدیدم همیشه با یک لنگ کفش راه رفتم با این فکر چشمهایم را بستم و خواب با صدای آهسته خندهی دیوانوار سراغم آمد